صفحه دیویست چهار جاوید گفت زنده است و دو و نیمش باقی به قول خودش شیر شیر است گرچه پیر بود لیلا گفت ایش مردشور اون شکل اون چشمای گنده و قهوهی و سیبیلای درازشو ببرن شکلشو رو دیوار خلا بکشی آفتابه رم میکنه من از وقتی که یه علف بچم بودم از اون چشماش بدم میومد هنوزم که هنوزه بدم میاد اگه یه روز تو میخواستی بکشیش بده من خودم با این دستای خودم خفش میکنم گفتم ولش کن به خدا به قرآن مجید دلم میخواد برم وسط خیابون وایسم داد بزنم بگم هی ایوه ناس آی مردم بیاین ملک آرای پدر ته آبنبار خونش قایم شده بریزین بگیرین ببرینش کلانتری جاوید گفت، پاشو برو بخواب، گفتم اینقدر به کارهایی که مربوط به تو نیست دخالت نکن، حرفش رو نزن، تو گوش نمی کنی. لیلا گفت، چرا گوش می کنم، هرچی تو بگی گوش می اما این دلم، یعنی دل منم، سال هاست از دست این دروگوی متقلب خونه. جاوید گفت، خواهش می کنم پاشو برو بخواب، حرفش رو نزنی. چقدر دلم خونک شد که تو اون رو اسیر و منتر خودت کردی. بالاخره حق به حقدار رسید. گفتم حرفش رو نزنیم. لیلا مدتی ساکت ماند. در سایه روشن اتاق به جاوید نگاه کرد. به جای اینکه بلند شود برود سرش را همانجا گوشه لحاف جاوید گذاشت. روی گلیم دراز کشید و آهی از ته سینش کشید. در تاریکی گفت، وقتی این بلای مزخرف تموم شد و آبها از آسیا افتاد من هر جا تو گفتی، هر جا تو خواستی با تو میام، یا هر جا تو گفتی میرم، هرچی تو خواستی میکنم. جاوید او را نگاه کرد، این نخستین بار بود که لیلا چنین به آرامی و سادگی این حرفها را میزد. چنین روحیه تازه‌ای، همراه و حتی از خودگذشتگی را هرگز در او ندیده بود. این را هم به فال نیک گرفت. امشب پس از ملک آرا این بار دوم بود که روحیه تازه و همکار میدید. گفت اگر من فردا وسیله فراهم کنم؟ نه. فکرش را بکن. نه. همین فردا نه. گفتم وقتی کار ملک آرا تموم شد گوش کن اجازه بده من مقدار خیلی زیادی پول هر چقدر بخوای از اون می گیرم در اختیارت میگذارم و اجازه بده من تو را به خراسان بفرستم من هم خیالم راحت می شود تو برو پیش خانواده خودت من که برای تو شوهر نشدم و هیچ وقت نیستم برو زندگی تازه برای خودت درست کن در شهر خودت میان آدم های خانواده خودت زندگی کن؟ نه، چرا فکر نمی کنی؟ چرا همهش با عجله بیخودی نمیاری؟ نه، چرا نه؟ من می خوام بمونم باشم ببینم که ملک آرا به خاک سیاه و مرگ میافته تا این جگرم خونک بشه؟ جاوید گفت، این کار را به اهده من بگذار، خیالت آسوده باشد. لیلا گفت، «میدونم دونم، می دونم. مدتی سکوت کرد. بعد گفت، این همه سالها من تو را عذیت کردم، تو را خفت دادم، اما حالا می بینم و میفهمم فهمم که تو چی هستی و چقدر خوبی. سکوت کرد، یه موی گندیده تو به تن ملک آرا نیست. باز گفت، این همه سالها من تو رو خیلی اذیت کردم، عذاب و آزارت دادم، از روی خریت و خامی بود، باور کن، فراموش کن، اما یه چیزی رو هیچ وقت به تو نگفتم، جاوید برگشت او را نگاه کرد، لیلا گفت، تو رو دوست داشتم، جاوید سرش را برگرداند، چه زنی می توانست او را دوست داشته باشد؟ لیلا گفت می خوای باور کن می خوای باور نکن نمیدونی دونی ته دلم چقدر تو را دوست داشتم هنوزم دارم بگیر به فقط تو را دوست داشتم همیشه جاوید سرش را برگرداند اما او را نگاه نکرد و چیزی نگفت فقط تو را من خستم برو بخواب باشه هرچی تو بگی خسته و خالی دراز کشید شب تاریک را که بیرون روی باغ سایه گستر بود تماشا کرد ندید که در تاریکی لیلا دراز شد دست او را گرفت آنچنان تکان خورد که لیلا ترسید تندی دست او را ول کرد انتظار و تحمل این را نداشت دست لیلا سرد و شون بود انگار دست مرده ای؟ نه، انگار ماری از ته انباری مطبخ کهنه ملک آرا بیرون خزیده و او را گزیده بود. دیگر نگذاشت به او دست بزند، گرچه حرفی نزد و اجازه داد آن شب لیلا پای رختخواب او بخوابد. شست صفحه دیویست و آن روز سپیده دم که از خواب بیدار شد احساس شگفت و ای داشت، انگار که نور و ندای شگرفی از درون خودش برخواسته بود. آمد درون حوض بزرگ آب باغ آن حیات، سر و تنش را شست و پاک کرد. آب تمیز و روشن حوز را دوست داشت و هر روز حوز را خودش از آب جاری و زلال جوی باغ که به گفته سریا خانم مثل اشک چشم بود آب می انداخت. از اینکه ملک آرا می توانست با آن آب مانده و بو گرفتهی ته انبار زندگی کند بنوشد وضو بگیرد چندشش میشد در آین او با آب کسیف و بو گرفته زنده بودن، بدترین گناه ها بود. شنا کرد، خودش را شست، آمد بیرون، خشک کرد. صدرش را پوشید، بند کشتیش را سفت بست، نیایش بامدادی را رو به آفتاب انجام داد. تابستان داشت خودش را روی شهر می گسترد، هر وقت تابستان می شد او همیشه یاد آخرین سال زندگی خودش در یزد می افتاد. به ویژه روز مراسم سدر پوشان خودش، آن روز گرم در آتشکده نیاکانش که او را برای این دنیا آماده کرده و در این جهان رها کرده بودند. امروز در این بامداد تابستانی میاندیشید که بیست و دو سه سال زندگیش تا اینجا از سه دوره گذشته بود، دوره نخست دوره پاک و رویا مانند بچگیش بود. لابد مانند دنیا در دوره‌ای که تازه آفرینش یافته بود. دوره دوم سالهای پس از مراسم صدر و یورش بدبختی ها و هفت سال رنج بود. دوره سوم اکنون آغاز شده بود. دوره درگیری، روبرویی و پیکار با نیرویی که نابود کننده خانواده او و سرچشمه همه بدیها و بدبختیها برای او بود. پس از ناشتا بیرون آمد. دم در کوچه ایستاد. محله را مانند هر روز برانداز کرد، بررسی کرد. بازارچه از خواب بیدار شده بود، آفتاب روشنی بر پشت باام های کاهگلی نشسته بود و پاسبان جلو در باغ ملک آرا داشت چرت می زد. جاوید شاهباجی را دید که با چادر و چاقچور و بقچه حمام از در حیات آمد بیرون. خودش را کنار کشید تا شاهباجی رد شود. از شاهباجی زیاد خوشش نمی آمد چون وراج و ولنگار بود و حرز دهان. گذاشت بگذرد. پنجاه شست سال کلفتی گوشه مطبخ تاج ما خانم میان کلفت و نکر دیگر دهان شاهباجی را از چاک و بست انداخته بود بدون اینکه که ذره خوبی در هیچ چیز ببیند. شاهباجی امروز آمد جلو جاوید ایستاد او را صدا کرد. جاوید هرگز ذره ای از هیچ جای جسم و بدن سر و صورت. حتی ناخونهای شاهباجی را هم ندیده بود شاهباجی گفت میگم گوش کن میخواستم یه چیزی رو بهت بگم صبح بخیر شاهباجی عافیت باشه میگم من یه عمر با اسمت و آبرو زندگی کردم حالا نمیخوام مشغولون زببه بمیرم چی شده شاهباجی؟ هیچی من نمیخوام پشت سر کسی حرف بزنم خبرچینی کنم. خبرچینی گناه کبیره است و جای خبرچین ته آتیش جهنم و نماز و روزش باطله پس من اگر جای شما بودم خبرچینی نمیکردم میرفتم اما چیزهایی هست که آدم نمیتونه ندیده بگیره چه چیزهایی هیچی فقط میخواستم بگم موازه بزنت باش چی؟ موازه به زنت باش موازه به لیلا؟ شاهباجی گفت چند روزه که مثل زنی که شلخته ها نشسته تا پای تو از خونه بره بیرون منظور تا تو پاتو از خونه میذاری بیرون لیلا هم چادر میندازه سرشو نمیدونم از کدوم ور میره که توی خونه نیست میشه نمیدونم از کجا هم گر و گر پول میگیره به شما مربوط نیست که مدام سرخاب سفیدابم میخره و جلوی آینه است به لیلا کاری نداشته باش شاه باجی خانوم لیلا زندگی و سرنوشت خودش رو داره شما هم برو دنبال زندگی خودت خیلی کد بانوه خیر سر امر شاه باجی راست گفتی که جای خبرچین کجاست ته آتیش جهنم شاهباجی بهش برخورد، گفت، وا، حالا نوای منو درمیاره فقط میخواستم بگم کلاهت رو بذار بالاتر. بس کن، فقط مواظب اون سوزمونی خانوم ورپریده باش، تا گندش در شاه شاهباجی گوش کن، شما فکر زیارت و آخرت خودت باش، لیلا از من پول میگیرد و همین روزها هم میخوام او را بفرستم خراسان پیش فامیل و خانواده مادرش. بنابراین خدا نگهدار. شاهباجی گفت. همون که گفتم. مواظب اون باش. جاوید دیگر به حرفهای او گوش نکرد. امروز او حوصله این حرفها را نداشت و ولنگاری شاهباجی را هم به اعضاب احیاناً دعوا و مرافعه‌ای بین او و لیلا گذاشت و دیگر فکرش را نکرد. در نظر داشت اول یک سر دیگر به بیمارخانه فیروزآبادی بزند و زود حرکت کرد. درشکه گرفت به شهر ری رفت. ساعت بعد کنار بستر ابوتراب بود. میدید که احساس شگرف سپیده دم خودش درست بود. امروز ابو از مرگ فاصله بیشتری گرفته بود. با وجود نفسهای دردناک و صورتی که از تب گل انداخته بود امروز او می توانست لای چشمهایش را باز کند. بیماران دیگری که در اتاق بودند به جاوید گفتند حال ابوتراب تراب انگار امروز از صبح کمی بهتر شده است. دیشب همه فکر میکردند، دارد تمام می کند. اما امروز به طور موجز آسایی نه تنها زنده مانده بلکه جان تازه یافته بود. جاوید کنار او زانو زد نام او را صدا کرد. نام خودش را هم به او گفت و از دیگری در مشت او گذاشت. گفت، ابو تراب، ابو تراب، صدای مرا می از گوشه های چشم های قی کرده و بی موجه ابو تراب آب می آمد و امروز چیزی شبیه گریه داشت. پلک هایش به هم می خورد. جاوید گفت، ابو تراب گوش کن، خواهش می کنم خوبی کن به من بگو خواهر من کجاست ابو تراب ساکت سرش را تکان داد جاوید گفت تو داری به سوی خدای خودت برمیگردی خودت را برای آخرت سبک بار کن به من بگو خواهر من کجاست بر روح خودت را دست کم از این گناه پاک کن و آمور زیده نگهدار پلک‌های های خشکیده به هم خورد. از لای ها شکافی مانند ترک دیوار کابوسناک باز شد. کاسه های چشم های آبکی مردمک های سبز کدر شده و ثابت شده او نمایان شد که به سوی جاوید نگاه کرد. در نگاه او موج مرده پشیمانی و زبونی بود. انگار از چیزی که میخواست بگوید میترسید. میترسید جاوید همینجا او را خفه کند جاوید گفت ابو خواهر من کجاست بگو لبهای خوشک ابوتراب به هم خورد گریه می کرد و انگار با لبهای بسته و فشرده میخواست میان گریه لبخند بزند پوزش خواهی کند نمی حرف بزن خواهش می نه ترس من کاری با تو ندارم. قسم می خورم که از تو نگهداری بکنم. هرچه شده فقط بگو خواهر من زنده یا مرده کجاست. بگو. لبهای خشک عبو را به هم خورد باز شد. گفت باغ کدام باغ؟ کدام باق؟ کدام باق کن. پیش کی؟ گوشه مرغدونی زنده است؟ لبها و چشمهای عبو تراب حالا باز به هم رفته بودند. جاوید یک شانه او را گرفت کنداد. کوشید یک حرف دیگر هم از دهان او بیرون بکشد. چون لابد دیگر هرگز وقتی نبود. گفت عبو تراب، یک نفر دیگر هم با تو آن شب آنجا آمده بود. فقط اسمش را بگو. آن شخص کی بود؟ یک اسم ابو تراب فقط اسمش را بگو که اگر زنده است من پیداش کنم سعی کن نفسهای ابو تراب حالا داشت پس می رفت و جاوید می دید که سکوت مرگ روی سینه و صورت ابو تراب فرو می آمد گفت اسمش را بگو کوشش کن اسمش را بگویی. دهان ابو تراب باز مانده بود صداهایی توی حلقومش می لقزید. جاوید سرش را جلو برد. توی دهان بدبو و زشت او را نگاه کرد. بعد گوشش را برد جلو. با دقت گوش کرد. کلمات قاطی و درهمی لام و علف بین زبان حلقوم ابوتراب میپیچید. انگار لا اله الله می گفت. بیشتر دقت کرد. فقط یک کلمه بود که در میان زبان و سقف دهان ابوتراب ادا میشد، می, می و تکرار میشد و این کلمه بهترین کوشش یک نفس مرده برای عدای لفظ الله یا چیزی شبیه آن بود. آنگاه ابوتراب در انجماد مرگ فرو رفت. جاوید از زمین بلند شد. ابو تراب را رها کرد و از اتاق و از بیمارخانه بیرون دوید. درشگه ای که او را از شهر به اینجا آورده بود، هنوز گوشه جاده ایستاده بود. جاوید دوید سوار شد. به کالسکچی گفت به تهران برگردد. گفت و برابر به او هد که هرچه زودتر و تندتر برود. از آنجا هم با پول بیشتر درشگه را به باغ کند برد. دورشگاه با اسب قبراغ سیاه از جادههای خاکی خالی میزد و بالا میآمد. در طی یکی دو ساعتی که طول کشید، از شهر ری به باغ کند برسد، جاوید پر التهاب ترین ساعتهای عمرش را گذراند. مغزش از حجوم خیالها و امیدها پر و توهمی شد و ابوتراب برای نخستین و آخرین بار دروغ نگفته بود. درگ را نگه داشت و به درون باغ دوید. بچه های باغبان پیر ملک آرا او را میشنناختند. خود باغبان پیر دو سه سال پیش مرده بود. زن کور و بچه خورده های او حالا نگهداری باغ را به عهده داشتند. سراغ مرقدانی را گرفت به او نشان دادند که کلبه یک گوشه دور باغ بود. از زن کور باغبان پرسید که آیا کسی را در مرغدانی نگه نداشتهاند یا هیچ وقت نگه نداشته بودند؟ نه، هیچ کس، هیچ وقت. جاوید لبهایش را گزید و به نحوی این ترس و انتظار بد را داشت. به سمت مرغدانی دوید در مرقدانی را با مشت زد باز کرد، دخمه کسیف، بابوی بسیار بدش خالی بود، به دوز یکی دوتا مرغ که بالای تیر و تختهای پوسیده روی تخم خوابیده بودند و با ورود جاوید به قد, قد و سر و صدا افتادند. جاوید همه جا را نگاه کرد، اثری از آدمیزاد یا زندگی آدمیزاد نبود. به گوشه های مرغدانی نگاه کرد، گوشه مرغدونی، یک گوشه زمین بفهمی نفهمی گودتر بود و خاک فرو و افت داشت. روح جاوید از رنج و درد پر شد. بچه ها را بیرون کرد، در را بست. بیل قرازه ای را که بالای تخته ها بود برداشت و به گوشه افت کرده مرغدانی رفت و دست به کار شد. خاک پس از هفت سال هنوز سست بود. او تند تند خاکها را بیل بیل برداشت چپ و راست پس زد مغزش داغ بود و از چشمهایش اشک می‌ریخت. پس از یکی دو دقیقه نخستین استخانهای پا نمایان شد جاوید بیل را کنار گذاشت با دست به نرمی بقیه خاک و گل را عقب زد همیشه از مرگ می‌ترسید و بدش می‌آمد. هفت سال رنج برده بود و خون خورده بود به این امید که خواهرش را پیدا کند. امروز مزد هفت سالش را از ملک آرامی گرفت. وقتی تمام اسکلت کوچولو پیدا شد جاوید پایین پایان نشست. آن را نگاه کرد. اسکلت یک بچه بود. ریز قلمی خاک خورده. بیشک همان شب یا همان سال اول او را کشته و اینجا خاک کرده بودند. پاره های پارچه پوسیده پیراهن افسانه را شناخت. نشست، زانوهای خودش را بغل گرفت. اشک تمام گونه ها دماغ و پیشانیش را میسوزانند و میلرزند. سرش را به آسمان و به چپ و راست گرداند. سوزایی این زخم بزرگ، اکنون روی روحش توان فرساتر و هولناکتر از خود مرد بود. با دوتا دست توی سر خودش کوبید و پی در پی زد. همانگونه که روزی که شنید مادرش مرده بود خودش را زده بود. مدت بسیار درازی نشست و گریست. پس از مدتی عشقهای چهرش را با آستین صدرش پاک کرد. برای آخرین بار به اسکلت افسانه نگاه کرد فقط گفت: افسانه مرا ببخش که زودتر نرسیدم. دلار شد خاک را دوباره روی جسد ریخت و آن را از بوی بد و کساافت مرغدانی اندک پناهی داد. زمین را صاف و هموار کرد وقتی کارش انجام شد به دیوار تکیه زد. با افسانه بدرود گفت آشموهی. اجش همه وناهی اواخش و پشیمان و فبتت هم به پاکی و راستی از جهان بگذر، از هر گونه گناهی که از من پدید گشته باز ایستادم، پشیمانم و آمرزش می جویم. از باغ بیرون آمد، به دروشگ که هنوز بیرون در منتظرش ایستاده بود گفت با سرعت باد سرسر به شهر برگردد، و به چهار راه گلوبندک سر کوچه چاله حصار برود برای آخرین دیدارش با ملک آرا آماده بود و چهار صفحه و سه از سر گلوبندک تمام سرازیری کوچه چاله حسار و بازار را دوید وقتی به گذر وزیر دفتر رسید ظهر بود مسجدها اذان میگفتند پاسبانی که جلوی در باغ ایستاده بود چرت میزد در حیات بیرونی باز بود جاوید با گام های تند و بلند نفس زنان وارد حیات شد حیات را برانداز کرد لیلا خانه نبود شاهباجی هم انگار هنوز از حمام برنگشته بود جاوید آنها را صدا کرد جوابی نشنید به طور عادی این روزها خودش وقتی صبح دنبال کارها از خانه بیرون می رفت تا اصر به خانه بر نمی گشت. نبودن لیلا هم در خانه تازگی نداشت. لابد رفته بود سر کوچه خرید کند که در را باز گذاشته بود. به اتاق خودش رفت. چاقوی بسیار بزرگی را که خریده بود و توی بختش پنهان کرده بود برداشت. آمد توی حیات ایستاد و آخرین نیایش و فروته روزش را خواند از دالان گذشت و در دالان را از داخل بست بعد از باغ هم گذشت و به زیرزمین مطبخ قدیمی رفت از انباری هم گذشت پشت دریچه چوبی آبانبار گیوههایش را درآورد نفس بلندی کشید، دسته چاقو را توی دستش سفت گرفت و به آرامی و بی صدا به درون آبنبار سیاه لغزید. آب هنوز تا زیر کمرش می رسید، کم کم پیش رفت، اما ناگهان با وحشت و حیرت دید که لولاهای بیرون دریچه آهنی باز است. یعنی ممکن بود دفعه پیش دیشب خودش بستن آنها را فراموش کرده باشد؟ دریچه به هر حال بسته بود. جاوید جلوتر رفت و گوشش را پشت دریچه گذاشت. چون انگار صداهایی از داخل سرداب میشنید. درست شنیده بود. صدای شیرخاندن ملک آرامی آمد و صدای زنی که با او می خندید. ملک آرامی گفت. جهان چیست جز خواب آشفته ای. و صدای خنده زنی بلند بود که کرکر کر لوس میزد، انگار که کسی قلقلکش داده باشد. و جاوید صدای لیلا را به خوبی شناخت و شنید که میگفت نکن، اه نکن، میگه جهان چیست. بگم جهان چیست، جهان اینه. از بس که من از توی این آبنبار رفتم و اومدم دارم قلنج سرد میکنم. و ملک آرا می گفت خودم قلنج خوشگلت رو گرمش میکنم مگه گرمش نکردم و لیلا می گفت چرا کردی؟ اما حالا باید من باز برگردم از توی آبنبار رد شم و دوباره سردم میشه. و اونجا کسی نیست که گرمم کنه و ملک آرا می گفت اون پسر نفله دولبریده بریده نمی تونه گرمت کنه؟ و لیلا می گفت ایش اون مرده اون آدمه؟ اما خب من بهتر برگردم تا یارو برنگشته و ملک آرامی گفت باش مگه نگفتی تا عصر بر نمی حالت اول زهره. و لیلا می گفت بهتره من زودتر برگردم. کار اون آکله حساب کتاب نداره. اگه برگرده و منو ببینه که دارم از در دالون میام بیرون میگیره پوستم رو میکنه ملک آرامی گفت غلط میکنه، پدرشو خودم درمیارم، میارم، بذار موقش برسه، فعلا لازمش داریم و لیلا میگفت بهتره هیچی رو ندونه که پدرسک خیلی یدنده و شق و میگیره خفم میکنه جاوید چاقو به دست وسط آب سیاه سنگ شده بود، نمیدانست چه کار کند حرف شاهباجی را یادش افتاد که گفته بود چند روزه که تا او جاوید پایش را از خانه بیرون میگذارد لیلا هم میرود و غیبش میزند. پس لیلا اینجا میآمد و یاد آرایشها و مهربانی های این چند روز اخیر لیلا بود. یاد آن شب افتاد که لیلا دست او را گرفته بود لمس کرده بود آن شب که با قمزه به او گفته بود دوستش دارد و تا صبح پای رختخواب او خوابیده بود. آن شب بعد از ظهرش را اینجا گذرانده بود. تصمیم گرفت همانجا داخل شود و هر دو را با هم بکشد. اما هفتیر و شمشیر ملک آرا را یادش آمد. نمی توانست هر دو را با هم بکشد. اگر الان میرفت داخل و جنگ میکرد بیشک خودش به دست ملک آرا کشته میشد و تمام رنجها و فکر انتقام خونهایی که ریخته شده بود و فرصت نابود کردن ملک آرا و امید پیروزیش برباد میرفت. درنگ کرد. به خودش گفت: «شتاب نکن فکر کن بیگودار به آب نزن با اندیشه و خرد پیش برو.